وصل بیستوم ازدواج با آدم بیشعور وقتی فهمیدم عشق از زندگیمون بیرون رفته که دیگه سیگارش رو در هنگام بوسیدن من از لبر نمی داشت ماری جین همسر یک بیشعور شاید هیچ چیز در زندگی از این تکاندهنده تر نباشه که روزی از خواب برخیزیم و دریابیم که یک آدم بیشعور تو رخت خوابمونه بعضی آدم این حقیقت تلخ رو در همون شب اول عروسیشون میفهمن. بعضی تا سالها بد نمیفهمن. مدت زمان فهمیدن این واقعیت اگر چنین چیزی روی بده، اهمیت زیادی نداره. اون چه مهمه در که معنا یک زندگی با یک همسر بیشعور متضمن اونه. روش هایی که برای سر و کار داشتن با همکار یا دوست بیشعور به کار میره، برای همسر بیشعور کار نداره. پس چه کارایی میشه کرد ؟ زیاد نیستند. یک. طلاق. این کار چندان پیشنهاد نمیشه. چرا که فقط یه کار هست که از زندگی مشترک با آدم بیشور آورتره و اون جدا شدن از اوست. اگه از بند و بسات دادگاه جون سالم به در ببرید و مخارج این کار کمرتون رو نشنه همسر قبلیتون در باقی عمرتون همیشه شما رو تعقیب خواهد کرد وزیر نظر خواهد داشت تا مطمئن بشه از کاری که کردید پشیمون هستید. البته احتمال اینکه تمام عمرتون رو در پشیمونی به سر ببرین بسیار بالاست. چرا که هرکس یه بار در زندگی دل به بیشعوری ببنده، حق داره که تا آخر عمرش انگشت ندامت به دندان بگزه. دو، فرار به یک کشور خارجی با نام مستعار. این راه بهتره. اما به خاطر مواردی که در گزینه طلاق مطرح شد زیاد عملی نیست و اینکه با زرنگی بتونید قبل از خروج از کشور وانمود کنید که مردید سه خودکشی با احتیاط به اندازه گزینه دوم جالب نیست اما از گزینه اول مفیدتره اشکال این روش برگشت ناپذیری اونه چهار آدمکشی با احتیاط اخلاق پزشکی اجازه نمیده این روش یا روش قبلی رو توصیه کنم. با این حال یه وقتهایی واقعاً چارهای جز این کارها نیست. اگر احتیاج به کمک دارید دوست خوبی دارم به نام گویدو ام... پنج یاد گرفتن زندگی مشترک با آدم بیشور این گزینه رو بررسی میکنیم. تنها راه حل همینه. البته این کار ممکن نیست مگر اینکه چند نکته رو در ذهن داشته باشیم. یک قبول کنیم که نمیتونین به زندگی ایدئال دست پیدا کنین. شاید دفعه بعد. هر چه زودتر انتظاراتتون از زندگی زناشویی رو پایین بیارین به نفع خودتونه. این کار به ویژه کمک میکنه تا از یادآوری این مطلب افسرده کننده که فقط شما بودید که این بیشور رو به همسری انتخاب کردید خلاص میشید دو. اگر هنوز افسرده هستید، انتظارها رو باز هم پایین تر بیارین. اونقدر پایین که حتی از ازدواج با یک آدم بیشعور خوشحالم باشید. به چیزای خوبی فکر کنید که میتونستن طور دیگری باشن. مثلا به این نکته مثبت مصبت بیشعوری همسرتون فکر کنید که میتونید با اشاره کردن به اون بچه هاتون رو از بیشعور بودن برحضر بدارید. سه یاد بگیرید که به خاطر وراجی کردن یا برج زهر مار بودن اون جوش نزنین و برای سرکوب کردن کامل احساسات و کمبود محبت خودتون خودخوری نکنین. برای اینکه به طور کامل بیرگ بشید، لازم نیست حتما به الکل معتاد بشید. فقط یاد بگیرید که بیخیال باشید. اگه به این درجه از بیخیالی برسید، حتی میتونید با چاقو دستتون رو ببرید بدون اون که درد زیادی رو احساس کنین. چهار. جایگزینا را رو با احتیاط آزمایش کنید. از میان کسانی که آنها هم همسران بیشعوری دارند دوستانی انتخاب کنید. به این ترتیب همدردانی پیدا می کنید که می تونید با اونا درد و دل کنید و کمبودهای عاطفی و غیرتون رو جبران کنید. دوست من گویدو در بخش و غیره هم فعاله و می تونه با سرویس های عالی آنچه رو که بخواید براتون فراهم کنید. پنج تا اونجا که ممکنه با همسرتون مهربون باشین و مدارا کنین. این کار باعث کاهش قابل ملاحظه استکاک ها و آسیب هایی که تا کنون داشتین میشه. مثلا وقتی که از سر کار به خونه اولین کلماتی که به همسرتون میگین این باشه. معذرت میخوام. به خاطر هر چیزی که به خاطرش ناراحتی معذرت میخوام. این نوع اوزرخواهی های عمومی، بعد اون رو میخوابونه و از ناراحتی بیشتر خودتون پیشگیری میکنه شش اگه همسرتون بگونه ایه که خوشی ها رو تحمل نمیکنه و اصرار به دعوا و مرافه داره در این صورت با یه بیشعور معمولی ازدواج نکردیم بلکه با یه بیشعور تمام عیار ازدواج کردیم در چنین موقعیتی راه حل اینه که به او کمک کنید تا راههایی برای تخلیه مازاد خشم و عصبانیت خودش پیدا کنه تشویقش کنید که به کلاس های آموزش جنگ چریکی و دفاع شخصی بره. خودتونم حتماً کاراته یاد بگیریم. آیا مشاوره های خانوادگی مفید خواهند بود؟ یقیناً بله. همونطور که سرهنگ ساندرز، استاد تاکتیک های جنگی و مشاور خانواده در وست پوینت میگه حضور زوجهایی که مشکل بیشعوری دارن در مشاوره های خانوادگی مفیده. البته نه به عنوان بیمار. بلکه به عنوان آینه عبرت ای به این ترتیب که میشه با نشون دادن اونا به زوجایی که مشکل دارن و برای مشاوره مراجعه میکنن کمک کرد تا بفهمند زندگیشون اونقدره هم که فکر میکنن بد نیست اونا با مقایسه زندگی زناشوییشون با زندگی اون بیشورا او قدر هم رو خواهند دونست و علاقمند به حفظ زندگی مشترکشون خواهند شد بسیاری از مردم ساندرز رو به بدبینی متهم میکنن البته نه به خاطر اصرارش بر مسئله یاد شده، بلکه به خاطر اعتقاد راسخش به این مطلب که ازدواجهاگ بد قابل درمان نیستند، فقط میتوان از آنها پیشگیری کرد. توصیه همیشگی او برای مواقعی که احتمال ازدواج جدی میشه اینه که فقط بگو نه.